ژن خودخوا نوشته ریچارد داکینز فصل پنجم بخش سوم زیست شناسان اغلب از برتری زیستی یا نقش سلسله مراتب حاکمیت به عنوان تقلیل دهنده ی تهاجم آشکار در گروه صحبت میکنم اما راه درست بیان آن این نیست نمی توان گفت سلسله مراتب حاکمیت به تنهایی در تکامل نقش دارد زیرا این ویژگی به گروه تعلق میگیرد نه به فرد شاید وقتی الگوهای رفتار افراد که خود را به صورت سلسله مراتب حاکمیت نشان میدهند در سطح گروه در نظر گرفته شود بتوان آنها را نقش دار به حساب آورد در هر حال بهتر از کلاً از خیر واژه نقش بگذریم و قضیه را به صورت ESS های رقابت نامتقارنی در نظر بگیریم که در آنها شناخت و حافظه فرد دخیل است. ما تا اینجا رقابت بین اعضای یک گونه را بررسی کردیم. رقابت بین افراد گونه های متفابه چگونه است؟ همونطور که قبلا دیدیم، اعضای گونه های مختلف نسبت به رقیبانی که اعضای یک گونه اند رقابت غیر مستقیم تری با هم دارند. بنابراین باید بین آنها انتظار جنگ و دعوای کمتری بر سر منابع داشته باشید و این انتظار ما برآورده می شود برای مثال سین در مقابل سین دیگر از قلمروشان دفاع می کنند اما در مقابل پرنده چرخ ریسک بزرگ چنین نیستند می شود نقشه یک سین مختلف را در یک جنگ رسم کرد و نقشه قلمرو چرخ ریسک را روی آن انداخت عالم رو به این دو گونه پرنده به صورت کاملا بی نظمی دارند، دارد. که گویی روی دو کره جداغانه اند. اما منافع افراد گونه متفاوت به صورت‌های دیگر هم دوچات تضاد می شود. برای مثال شیر بدن گوزن را برای خوردن می خواهد. ولی گوزن انتظار دیگری از بدنش دارد. این را نمی شود درست معادل رقابت بر سر یک منبع دانست و از نظر منطقی پی بردن به اینکه چرا اینطور است راحت نیست. منبع مورد نظر گوشت است. ژن‌های شیر گوشت را به عنوان غذا می‌خواهند تا ماشین بقایشان زنده بماند. ژن‌های گوزن آن گوشت را میخواهند که به عنوان ماهیچه و عضو فعال برای ماشین بقایشان کار کند. این دو مورد استفاده از گوشت متقابلا مغایر یکدیگرند. بنابراین تضاد منافع وجود دارد. اعضای یک گونه هم از گوشت ساخته شدند. چرا گونه خاری تقریبا نادر است؟ همونطور که در مورد مرگ نوروزیهای های کل سیاه دیدیم، بالغ گاهی پرنده کوچک کوچه که خود را می خورند. با وجود این، هرگز دیده نشده که گوشت بالغ همگونه های بالغ خود را به قصد خوردن تعقیب کنند. چرا؟ ذهن ما هنوز آنقدر به تکامل در جهت اصلاح گونه ها فکر می کند که اغلب سوال های کاملا منطقی مثل سوال زیر به آن خطور نمی کند چرا شیر شیرهای دیگر را شکار نمی کند سؤال به جای دیگری از این دست که کمتر پرسیده شده است چرا گوزن از شیر فرار می کند به جای اینکه جواب حمله را بدهد شیرها شیر را شکار نمی کنند. به این دلیل که برای آنها این کار اس نیست. راهبرد همگوونه خاری به همان دلیلی که در راهبرد اقابی در مثال پیش از این دیدیم ناپایدار است. خطر انتقامجویی بسیار زیاد است در مورد رقابت بین اعضای گونه های مختلف احتمال صدق این قضیه کمتر است و به این دلیل است که بسیاری از طعمه ها به جای مقابل فرار را ترجیح می دهند. شاید در اصل، ناشی از این امر باشد که در تعامل بین دو حیوان از گونه های متفاوت عدم تقارن بزرگتر از آنچه بین اعضای یک گونه وجود دارد کارسازی شده است هرگاه در رقابتی عدم تقارن شدید باشد ایاساس ها احتمالا راهبردهای مشروط وابسته به آن عدم تقارنند در رقابت بین افراد گونه های متفاوت راهبردهای خیاسی با اگر کوچکتری فرار کن اگر بزرگتری حمله کن احتمال تکامل یافتنشان زیاد است زیرا عدم تقارون زیادی موجود است شیر و گوزن با انحرافی که در راه تکامل نسبت به یکدیگر دیگر به نوعی پایداری دست یافتند که عدم تقارن اصلی در رقابت را همواره رو به افزایش میبرد آنها در هنرهای دنبال کردن و فرار کردن به ترتیب کاملا هرفهی شدند یک گوزن جهش یافته که در مقابل شیر از راه برده به ما رو به جنگ بخواهد استفاده کند کمتر از آن رقیبی موفق خواهد بود که در افق خود را ناپدید می کند تصور من این است که با نگاهی دوباره به پیدا شدن مفهوم ESS آن را یکی از مهمترین پیشرفت‌ها در نظریه تکامل از زمان داروین به این سو به شما آوریم. هر وقت به تضاد منافع در جایی بر یعنی در همه جا از آن می توانیم استفاده کنیم دانشجویان رشته رفتار شناسی حیوانات معمولاً از چیزی به نام سازمان اجتماعی صحبت می کنند. اغلب خود سازمان اجتماعی یک گونه را یک هویت با امتیازات زیست شناختی ویژه در نظر می گیرند. یک مثال که قبلا هم با اشاره کردم از سلسله مراتب حاکمیت است. من فکر می کنم با آن مفاهمی که در بسیاری از عبارات زیست ها در مورد سازمان اجتماعی نهفته است می توان به فرضیه پنهان کسانی که به انتخاب گروه معتقدن پی برد. برای نخستین بار مفهومی که مینارد سمیت از ESS بیان می کند این امکان را به ما می دهد که به شفاف متوجه شویم چگونه مجموعی از خوبیت خودخواه مستقل می توانند با هم یک کل سازبان یافته را به نمایش بگذارند. از نظر من این نه در مورد سازمانهای اجتماعی درونگوونه ها بلکه در مورد بوم سامانه و جوامع که شامل گونه های نیز صادق است من امیدوارم در دراز مدت مفهوم ESS تحولی اساسی در علم بوم شناسی ایجاد کند می توانیم در مورد مطالبی هم که از فصل سوم به وقت دیگر موکول شده بود آن را بکار بریم مطلبی که به قیاس پاروزن قایق به جای ژنهای بدن مربوط می میشد که میباید روحیه تیمیشان بالا باشد ژنها نه به این دلیل برگزیده شدند که به خودی خود خوب هستند بلکه دو برابر کارایی سایر ژنهای خزانه ژنی خوب به شمار میآیند یک ژن خوب باید با بقیه ژنهایی که در یک سلسله بدنهای متوالی با آنها همراه است سازگاری داشته و مکملشان باشد ژن دمدان گیاه جویدن در خزانه ژنی یک گونه گیاه خار جن خوب محسوب می شود ولی در خزانه ژنی یک گونه گوشت خار جن بدی به شمار می آید می شود ترکیب سازگاری از جنها را به شکلی یک واحد انتخابی مجسم کرد در مورد مثال تقلید پروانه در فصل سوم دقیقا همین مورد اتفاق افتاده است اما با انایت به مفهوم ایسس متوجه می شویم با انتخاب در سطح ژنهای منفرد هم می توان به همان نتیجه رسید لازم نیست ژنها به کروموزوم های یکسانی متصل شده باشند قیاس با پاروزنی در واقع این مفهوم را به خوبی نمی رساند. به طریق زیر بهتر می توانیم متوجه آن شویم فرض کنید برای یک گروه کاملا موفق مهم باشد که پاروزن ها با استفاده از کلام هماهنگ شوند بعد فرض کنید از این پاروزن ها بعضی فقط به انگلیسی و بعضی فقط به آلمانی صحبت می‌کنند. از نظر پاروزنی، انگلیسی‌ها نسبت به آلمانی‌ها نه بهترند و نه اما به خاطر اهمیتی که برقراری ارتباط دارد، در مسابقه گروه مخلوط کمتر از گروهی که تماماً انگلیسی یا آلمانی است برنده می‌شود. مربی توجهی به این قضیه ندارد، او فقط افراد را جابجا به جا می‌کند. با آنهایی که در قایق برنده بودهاند امتیاز می دهد و امتیاز آنهایی که در قایق بازنده بودند کم می کند حالا اگر افرادی که در اختیار مربیند به طور اتفاقی همه انگلیسی باشند آن وقت اگر یک آلمانی وارد شود این احتمال هست که باعث باخت گروه شود زیرا در ارتباط اختلال ایجاد شده است برعکس اگر گروه از آلمانی ها تشکیل شده باشد ورود یک انگلیسی می باعث باخت آن شود آنچه در نهایت کلن به عنوان بهترین گروه در نظر گرفته خواهد شد یکی از این دو وضعیت باسوبات همه انگلیسی یا همه آلمانی و نه مخلوط به نظر می رسد. مربی کلی یک گروه همزبان را به عنوان یک واحد انتخاب کرده است. اما او این کار را نکرده است. او افراد را بر اساس قابلیت در پاروزنی و بردن در مسابقات انتخاب کرده است. از قرار معلوم، احتمال اینکه هرکس در مسابقه ها تا چه حد برنده شده باشد، بستگی به این دارد که افراد دیگری که در آن مجبوع هستند چگونه باشند. نماینده های اقلیت ها خود به خود کنار می روند، نه به این دلیل که خوب پارو نمی زنند، بلکه فقط چون نماینده اقلیت هم، و همین ترتیب این واقعیت که ژنها، به خاطر سازگاری متقابلی که دارند با هم انتخاب می شوند لزوما به این معنا نیست که ما باید گروه جنها را به عنوان واحدهای برگزیده بشماریم با آن صورتی که در مورد پروانه ها بود انتخاب در سطح پایین یک ژن منفرد نمایانگر انتخابی در یک سطح عالی تر است در این نمونه انتخاب فقط به هم شکل بودن توجه کرده است جالبتر از آن ژنها ممکن است به خاطر اینکه مکمل هم هستن انتخاب شوند با استفاده از زبان قیاس فرض کنید یک گروه قایقران متناسب و آرمانی باید از چهار نفر راست دست و چهار نفر چپ دست تشکیل شود بعد فرض کنید مربی که از این هم بیخبر است افراد را بر حسب شایستگیشان انتخاب می کند حالا اگر در گروه انتخاب شده حاکمیت را راست دست ها داشته باشند یک فرد چپ دستی که در آن باشد از امتیازی برخوردار است او در هر قایقی که باشد احتمالاً باعث برنده شدن آن قایق و بنابراین پاروزن خوب جلبه می کند برعکس در گروهی که چپ دستها در اکثریتند یک راست دست ممتاز شمرده می شود. این مورد شبیه موقعیت خوبی بود که یک عقاب در جمعیت کبوترها و یک کبوتر در جمعیت اقابها داشت تفاوت در این است که در اونجا ما از تعامل بین بدنهای افراد ماشینهای خودخواه صحبت می کردیم در حالی که در اینجا از روی قیاس صحبت از تعامل جنهای درون بدن است انتخاب کرکرانهی که مربی در مورد پاروزنهای خوب انجام می دهد در نهایت منجر می شود به اینکه در آن تیم چهار پاروزن چپ دست و چهار پاروزن راست دست باشند طوری که گویی و اونها به عنوان یک تیم کامل و متوازن یک جا انتخاب کرده است. به نظر من کتاتر این است که بگوییم انتخاب او در یک سطح پاییم تر یعنی در سطح داوطلبان نامستقل صورت گرفته است. وضعیت از نظر تکاملی باسوبات در اینجا رابرد ممکن است گمراه کننده باشد. چهار چپ دست. و چهار راست است فقط در نتیجه انتخابی در سطح پایین و بر مبنای لیاقت‌های ظاهری است. خزانه ژنی محیط زیست جنها در دراز مدت است. ژنهای خوب به عنوان ژنهایی که در خزانه باقی خواهند ماند بدون حساب و کتاب انتخاب می این نظریه نیست حتی یک واقعیت مشاهده شده هم نیست، یک توضیح واضحات است. سوال جالب این است که چه چیزی باعث خوب بودن یک ژن می شود. قبلا به عنوان یک تقریب اولیه گفتم آنچه باعث خوب بودن یک ژن می شود توانایی ساخت ماشین بقای کارآمد یعنی بدن است. حالا باید این گفته را اصلاح کنم. خزانه ژنی مجموعی از ژن هاست که از نظر تکاملی پایدارند. طبق تعریف خزانه است که هیچ ژن جدید دیگری نتواند آن تاخت و تاس کند. بیشتر جنهای جدید که از جهش، بازارایی یا جا پیدا می شوند، فوراً توسط انتخاب طبیعی سرکوب می شوند. آن مجموعه از نظر تکاملی باسوبا دوباره به آرامش می‌رسد. هر از یک ژن جدید موفق می شود در آن مجموعه تاخت و تازی کند و در آن خزانه منتشر شود در یک دوره موقتی ناپایداری پیدا می شود که سرانجام به مجموعه جدید با وضعیتی از نظر تکاملی پایدار تبدیل می شود. مقدار کمی از تکامل تحقق می آبر. در خیاس با راهبردهای خوشونت خشونت جمعیت ممکن است بیش از یک نقطه ثبات داشته باشد و گاهی ممکن است بین دو نقطه در نوسان باشد. تکامل تدریجی می یک حرکت هموار رو به بالا و یک نواخت نبوده بلکه به صورت یک رشته از مراحل پله مانند یا پرش از یک وضعیت پایدار به وضعیت باثبات دیگر باشد. شاید اینطور به نظر برسد که جمعیت در کل مثل یک واحد خودتنظیم عمل می کند. اما فکر جریان داشتن انتخاب در سطح ژنهای منفرد این غلط را ایجاد کرده است. جنها به خاطر لیاقت انتخاب می شوند. ولی معیار سنجش لیاقت عمل است که در مقابل ای از نظر تکاملی با یعنی خزانه ژنی موجود دارند. میناردسمیت با تمرکز روی برهم کنش، عمل متقابل، تهاجمه بین کل توانسته قضی را بسیار شفاف کند. تصور نسبتا پایدار بدن اقاب به کبوترا مشکل نیست زیرا بدن چیز بزرگی است می شود آن را دید اما برهمکنش های این چنینی بین ژنها که در بدن های متفاوت قرار دارند فقط نوک کوه یخی است اکثریت فراگیر برهمکنش قابل توجه بین ژنها در مجموعه ای از نظر تکاملی پایدار یعنی خزانه ژنی درون بدن افراد در جریان است دیدن این برهمکنش آسان نیست زیرا درون سلول رخ می دهند. به ویژه درون سلول های جنین در حال رشد. هماهنگی خوبی که در بدنها می بینیم، حاصل کار یک مجموعه از نظر تکاملی با ثبات جنهاي خودخواه است. اما من باید به سطح برهمکنش بین کل حیوانات که موضوع اصلی این کتاب است برگردم. برای درک تهاجم راحت ترین بود که هر حیوان را به صورت یک ماشین خودخواه مستقل در نظر بگیریم اما اگر افراد مورد نظر خیشان نزدی، برادر و خواهر، خالزاده و عموزاده پدر، مادر، فرزندان باشند این الگو به هم میخورد دچار اشکال می‌شود. به این دلیل که خیشاوند ها بخش مهمی از جنهایشان مشترک بنابر بنابراین هر ژن خودخواه وابستگی خود را بین بدنهای متفاوت تقسیم می کند. این موضوع در فصل بعد توضیح داده می شود جن خودخواه نوشته ریچارد دارکینز، پینوشت های فصل پنجم تهاجم پایداری و ماشین خودخواه توضیح در ارتباط با راهبرد از تکاملی پایدار در صفحه 69 ESS حالا می خواهم مفهوم اصلی ESS را به صورت مختصر بیان کنم. هر ESS راهبردی است که در مقابل نسخه های خودش موفق عمل میکند. منطق زیربنایی آن این است که راهبرد موفق راهبردی است که در جمعیت فراگیر شود. بنابراین این حالت برایش وجود دارد. که با نسخه هایی از خودش مواجه باشد بنابراین در صورتی موفقیتش ادامه یابد که در مقابل نسخه از خودش عملکرد خوبی داشته باشد این تعریف دقت ریاضیگونه تعریف مینارد سمیت را ندارد و نمیتواند جایگزینی برای آن باشد چون تعریف کاملی نیست ولی این برتری را دارد که به طور شهودی مفهوم اصلی E.S.S. را یک پارچه می کند توجه به ISS در مقایسه با آن زمان که این فصل را می نوشتم در میان زیستشناسان بیشتر شده است خود این در کتابش تکامل و نظریه بازی ها تا سال 1982 را به صورت خلاصه شرط داده است جفری بارکر یکی دیگر از سردمداران پیشکام این رشته شرح نسبتاً جدیدتری از آن را نوشته است. رابرت اکسلورد در کتابش تکامل همیاری از نظریه ای, ای اس اس استفاده کرده است. اما اینجا وارد آن نمی‌شوم. زیرا یکی از دو فصل جدید کتابم های خوب جلووند را تا حد زیادی به شرح کار اکسلورد اختصاص دادم. بعد از چاپ اول این کتاب، نوشتای خودم درباره موضوع نظریه ای اس اس مقالی با نام راهبرد خوب یا راهبرد از نظر تکاملی پایدار است و چند مقاله وابسته هم درباره زنبورهای حفار که توضیحشان در زیر میآید. توضیح درباره عبارت تلافیجو از نظر تکاملی با ثبات از آب در می آید متاسفانه این عبارت نادرست بود. اشتباهی در اصل مقاله مینارد سمیت و پرایس وجود داشت. و من آن را در این فصل تکرار کردم حتی با این جمله نسبتا نامعقول که تلافیجو جسور تقریبا ESS است کار را خرابتر کردم اگر راه بردی تقریبا ESS باشد دیگر ESS نیست و از بین رفتنی است تلافیجو به ظاهر مانند ESS هست زیرا در جمعیت تلافیجوها هیچ راهبرد دیگری که عملکرد بهتری داشته باشد وجود ندارد اما کبوتر به همان اندازه کارش خوب پیش میره در جمعیت تلافیجوها از نظر رفتار از تلافیجو قابل تشخیص نیست بنابراین کبوتر می تواند در آن جمعیت نفوذ پیدا کند مسئله چیزی است که بعد از آن رخ میدهد. دهد جی اس گیل و آلی جناب پدر ال جی ایاز یک پویانمای کامپیوتری ساختند که در آن تعدادی حیوان را به عنوان نمونه از میان شمار زیادی از نسل‌های تکاملی گذراندند. آنها نشان دادند که در این نمایش ای‌اس‌اس واقعی مخلوط پایداری از عقاب و قلدر است. این تنها اشتباه نوشته اولیه درباره ای‌اس‌اس نیست که با این پویانما آشکار شده باشد. نمونه دیگر آن اشتباه خود من است که در یادداشت فصل نه مورد بررسی قرار گرفته است توضیح درباره صفحه 5. متاسفانه در حال حاضر دانش ما آنقدر نیست که رقم واقع واقعبینانهای را به این هزینهها و سودهای مختلف که در طبیعت حاصل می شود نسبت دهیم حالا ما چند سنجش میدانی خوب برای سودها و هزینها در طبیعت داریم که در مدل‌های خاصی از ESS گنجانده شدهاند. یکی از بهترین نمونه ها را زنبورهای طلایی حفار بزرگ در آمریکای شمالی به دست می‌دهد. زنبورهای هفار آن زنبورهای آشنای اجتماعی ظرف مربای پایزمانی هستند که ماده های عقیمند و برای پرگنه کار می‌کنند. هر زنبور هفوار ماده مستقل است و زندگیش را صرف ساختن پناهگاه و غذا برای لاروهای پشت سر هم روان خود می کند. نوعا هر ماده یک حفره دراز در زمین می کند که در قد آن یک اتاقک که تو خالی است. بعد دنبال شکار ملخهای شاخدار برای زنبورهای حفار طلایی بزرگ راه میافتد وقتی به یکی بر بخورد آنها نیش می تا بی حرکت شود. بعد آن را میکشد و درون حفرهش میبرد بعد از اینکه 4 تا کتیدید یا همون ملخ‌ها رو جمع‌آوری کرد یک تخم روی توده آنها میگذارد و ورودی حفره را میبندد. آن تخم به کرم حشره تبدیل و از کتیدیدها تغذیه می کند. اما نکته این است که این زنبور به جای کشتن تومه فقط آن را از حرکت میاندازد تا فاسد نشود و تازه و زنده زنده خورده شود همین شیوه خوفناک در زنبورهای هم خانوادی دل زنبور بود که دارمین را باداش بنویسد. نمیتوانم بپذیرم یک نیروی خیرخواه و پرقدرت با طراحی قبلی این کمونها را به این هدف بسازد که از بدن و, و زنده تغذیه کنند. او میتوانست به عنوان مثال به آن فرانسوی که خرچنگ را زنده زنده میپذد تا تعمش را از دست ندهد اشاره کند. برمیگردیم به زندگی زنبور حفار ماده که یک زندگی مستقل است ولی ماده های دیگر هم گرچه مستقل در همان محدوده کار میکنند و گاهی به جای اینکه زحمت کندن یک حفره را به خود بدهند حفره کمده شده زنبور دیگری را اشغال میکنند دکتر جین بروکمان به نوعی معادل زنبوری جین گودال است جین گودال روی میمون ها تحقیق می کرده. او از آمریکا آمد تا با هم در آکسفورد کار کنیم با خودش یادداشتی مفصل از تقریبا همه رویدادهای زندگی دو گروه کامل زنبورهای ماده آورده بود یادداشتش به قدری کامل بود که میشد از روی آنها حساب زمانبندی هر تک زنبوری را به دست آورد زمان یک امکان محدود است اگر برای یک بخش از زندگی بیشتر وقت صرف کنی برای بخش دیگر کم در باقی میماند آلن گرافن ما را با هم آشنا کرد و به ما یاد داد چگونه هزینه های زمانی و منفعت‌هایی مثل مثلی را درست برابر کنیم. ما از روی یک بازی انجام شده، توسط های ماده در جمعیت نیوهمپشایرها، به شواهدی برای یک اساس مخلوط واقعی رسیدیم. ولی نتوانستیم به چنین شواهدی در جمعیت دیگر در میشیگانی ها دست یابیم. کودا بگویم، زنبورهای نیوهمپشایر یا برای خود لانه‌افرمی‌کنند یا وارد لانه‌ی کندشده زنبور دیگری می‌شوند. به تعبیر ما تصرف به نفع زنبور هاست چون بعضی از حفارها حفره ها را گذاشته و رفته و آن مکان باز قابل استفاده است تصرف لانه به این صورت حزینه ای ندارد اما تصرف کننده نمیداند کدام لانه اشغال و کدام رها شده است او خطر می کند و چندین روز مشغول پر کردن دو جا می شود در آخر ممکن است به خانه برگردد و ببیند درش مهر و موم و همه زحمات او بباد رفته است فرده دیگری تخم خود را در آنجا گذاشته و خرمن او را درو کرده است اگر در یک جمعیت تصرف کردن زیاد صورت بگیرد تعداد حفره های موجود کم دابل اکوپیشن و احتمال اشغال بودن بیشتر و بنابر این حفر کردن به صرفه است برعکس اگر تعداد زیادی از زنبورها هفر بکنند، تعداد های موجود زیاد و تصرف کردن به صرفه می شود. در جمعیت یک حد خاصی از تصرف می تواند تعیین کننده باشد. یعنی وضعیتی ایجاد کند که در آن منفعت کندن و منفعت تصرف کردن برابر شود. اگر بسیاری تسرفهایی که عملا وجود دارد پایین از بسامد تعیین کننده باشد، انتخاب طبیعی تصرف را ترجیح می دهد. زیرا تعداد حفره های رها شده که وجود دارد زیاد است اگر بسامد تصرفی که عملا وجود دارد بالاتر از آن بسامد تعیین کننده باشد حفره های موجود کم خواهد بود و انتخاب طبیعی به نفع حفاری عمل می میکند به این ترتیب تعادل آن جمعیت حفظ می شود. شواهد مفصل کمی حاکی از آنند که این یک ای مخلوط واقعی است برای هر زنبور امکان کندن یا تصرف کردن وجود دارد این نیست که جمعیت شامل مخلوطی از حفارها و اشغالگرهای حرفه‌ای باشد توضیح درباره عبارت شُستروفت ترین نمونه که من از این شکل عدم تقارن رفتاری میشناسم توضیح حشره آن به دیویس روی حشره چوب خالدار نمایش واضح تری از پدیده ساکن همیشه برندی تیمبرگن را به دست می دهد. کار تیمبرگن قبل از اختراع نظریه ای بود و تعبیر من از ای در چاپ اولین کتاب بر مبنای بازاندیشی بود. دیویس مطالعه پروانه خود را در پرتو نظریه ای به انجام رساند. او متوجه شد که پروانه های نر در ویتامبو جایی نزدیک آکسفورد دور لکه نور آفتاب بر زمین می ماده‌ها مادهها جذب آن لکه نور می شدن. به این ترتیب آن لکه ها موقعیت ارزشمندی داشتند. ارزش آن را داشتند که بر سر آن نرها با هم درگیر شوند تعداد نرها بیشتر از تعداد لکه های نور بود و افراد مازاد در هر چتر پربرگ جنگل منتظر بخت خود می دیویس نرها را میگرفت و یکی یکی رایشان می‌کرد. و به این ترتیب نشان داد که از دو پروانه آنکه زودتر در آن لکه نور رها شده بود از طرف هر دوی آن پروانه ها مالک آن قلمداد میشد آنکه بعدا لکه نور می مزاحم مزاهم محسوب میشد بدون استثنا آنکه مزاهم بود فورا شکست خود را پذیرفته آنجا را به مالک واگذار می کرد در یک آزمایش تعیین کننده نهایی دویست توانست طوری دو پروانه را بفریبد که هر یک از آن دو گمان کند خودش مالک است و دیگری مزاحم و فقط در چنین وضعیتی بود که یک جنگ جدی طولانی در می‌گرفت در همه این موارد که من به خاطر ساده کردن قضیه آن را طوری شرط دادم که گویی فقط یک جفت پروانه وجود داشته ولی همواره یک نمونه آماری از جفت پروانه ها وجود داشت. توضیح درباره ISS متناقض اتفاق دیگری که میتوان را نمونه یک ای متناقض دانست. از نامه شخصی به نام آقای جیمز داسن به تایمز لندن 7 دسامبر 1977 برمی آید. چند سولاست شدم یک مرق دریایی که از تیر تکل پرچم برای دیدبانی استفاده می کند بدون استثنا برای هر مرق دریایی دیگری که میخواهد روی آن دستگاه فرود بیاید جاواز می کند و این ربطی به اندازه آن دو پرنده ندارد. آشکارترین نمونه راهبرد متناقضی که من دیدم در مورد خوکهای اهلی درون جعبه اسکینر است. این راهبرد به همان مفهوم ای اس اس پایدار است، اما بهتر است آن را DSS بنامیم. راهبرد از نظر رشتی پایدار. زیرا در طول زندگی خود حیوان خود را آشکار می‌کند. در طی زمانهای تکاملی، جعبه اسکینر ابزاری است که در آن حیوان یاد می‌گیرد برای تغذیه خود اهرم را فشار دهد. و بعد غذا به صورت خودکار از دریچه وارد می شود. روانشناسان تجربی اغلب کبوتر یا موش کور را در جعبه کوچک اسکینر میگذارند. آنها در آنجا خیلی سریع یاد میگیرند که برای دریافت غذا های کوچکی را فشار دهند. خوک ها هم همین را یاد میگیرند. ولی در یک جعبه اسکینر بزرگتر و با اهرومی که چندان ظریف نیست، چند سال پیش یک فیلم پژوهشی در این مورد دیدم که باب به یاد آوردنش از خنده روده‌وار ب ای بالورین و جی بی میز در یک خوکدانی خوکها را تربیت کرده بودند اما ماجرا شکل دیگری داشت دسته اهرم را در یک سر خوکدان گذاشته بودند و بخش غذادهنده را در سر دیگر آن به این صورت که خوک مجبور بود بعد از فشار دادن اهرم فوراً به آن طرف خوکدانی بدود تا غذایش گیرش بیاید و دوباره با عجله به طرف اهرم برود و همینطور تا آخر در ظاهر قضیه اشکالی نیست اما بالدر نومیز خوک را دو تا دوتا در آن دستگاه میگذاشتند در این حالت این امکان وجود داشت که یک خوک از کار دیگری به نفع خود استفاده کند خوکی که نقش برده را داشت از این طرف به آن طرف میدوید و دسته را فشار میداد خوک ارباب کنار دریچه قضا نشسته بود و وقتی غذا از آن بیرون میآمد میخورد در واقع آن یک جفت خوک به یک وضعیت پایدار ارباب برده می رسیدند. یکی تقلا و دویدن بود و دیگری بیشتر کارش خوردن بود حالا به تناغذ آن می رسیم از قرار معلوم بر از پای ارباب و برده من هر وقت یک جفت خوک به وضعیت پایداری می رسند آن خوکی که نقش ارباب یا سو استفاده کن را داشت در همه موارد دیگر زیردست بود خوکی که برچسب برده را گرفته بود و همه کارها را انجام میداد، خوکی بود که در موارد دیگر معمولا دست بالا را داشت. هر کس که با آن خوک از قبل آشنا بود، عکس این را حس میزد و فکر میکرد آن خوک مسلط باید ارباب باشد و بیشتر کارش خوردن باشد و خوک زیردست باید برده باشد که بیشتر تقلا کند و کمتر بخورد. این تناقض از کجا پیدا میشود؟ در که آن را در قالب پایدار در نظر بگیریم قابل حل است. فقط باید مفهوم پایدار بودن راهبرد را از دوره زمانهای تکاملی به دوران رشد یعنی به آن مقیاس زمانی که در آن رابطه بین دو فرد شکل میگیرد منتقل کنیم این راهبرد که اگر مسلط هستی کنار دریچه غذا بنشین اگر زیر دست هستی اهرم را به کار انداز گرچه منطقی به نظر می‌رسد ولی چندان پایدار نیست خوک زیر دست بعد از اینکه که را فشار داد سریع می آن طرف ولی می بیند خوک مسلط پایش را جلو ورودی غذا گرفته و نمی گذارد چیزی بیرون بیاید. خوک زیر دست بعد از مدت کودایی از خیر فشاردن احروم می گذارد چون این رفتارش بدون پاداش است. اما حالا به عکس این راه توجه کنید. اگر مسلطی احروم را فشار بده اگر زیر دستی کنار در جه این بنشین این راه حتی اگر نتیجه متناقض آن این باشد که خوک زیر دست به غذای بیشتری برسد تنها چیز لازم این است که مقداری غذا برای خوک حاکم باقی مانده باشد وقتی از آن سر خوختنی می آید همین که به این سر می رسد به راحتی خوک زیر دست را حل می دهد و از دریچه دور می کند تا وقتی که کمی غذا به عنوان پاداش باقی مانده باشد این رفتار که فشردن اهرم و ناخواسته پر کردن شکم خوک زیردست دست ادامه می آبد. رفتار آنکو که زیردم که با تنبلی کنار دریشه غذا لمیده پاداش تعلق می گیرد. به این ترتیب کل راهبرد اگر سلتی مثل یک برده رفتار کن، اگر زیردستی مثل ارباب رفتار کن به پاداش می رسد و بنابراین پایدار خواهد بود. توضیح عبارت نوعی سلسله مراتب حاکمیت در جیرجیرک ها. تدبورگ که در آن زمان دانشوی فارغ تحصیل شده من بود، برای این نوع سلسله مراتب شپه ها که به شواهد دیگری در جیر دست یافت دستیاب همچنین نشان داد جیرجیرک نری که کمی پیش با نر دیگری در جنگ بوده اکنون احتمال جوفت شدنش با ماده ها بیشتر است این رو باید اثر دوک مالبرو نامید از روی نکته زیر که در یادداشت‌های روزانه اولین دوشس مالبرو آمده است علی جناب امروز از جنگ آمد و چکمه بلند به پا دوباره به من لذت بخشید. با توجه به گزارش زیر از مجله نیوساینتیست درباره تغییر سطح هورمون مردانه تستسترون شاید بتوان عنوان دیگری را برای آن پیشنهاد کرد. در تنیس بازها در 24 ساعت قبل از یک بازی مهم سطح دو برابر بالا میرود. بعد از بازی سطح آن در برنده باقی می ماند ولی در بازنده پایین میآید. توضیح عبارت مفهوم ایSS را یکی از مهمترین پیشرفتها در نظر تکامل بعد از داروین این جمله کمی اقررا آمیز است، شاید من در مقابل بیتوجه زیادی که در نوشت زیستشناسان آن زمان مخصوصا در آمریکا به مفهوم ISS می دیدم چنین به نشان دادم. مثلا، در کتاب مفصل زیست اجتماعی نوشته ای اوی ویلسون هیچ اشاره به این اصطلاح نشده بود ولی حالا اینطور نیست و من می توانم به این قضیه نگاه منطقی تر و متعادل تری داشته باشم در واقع اگر ذهن آدم به اندازه کافی روشن باشد لازم نیست از زبان ESS استفاده کند ولی ای اس به روشن کردن فکر خیلی کمک میکند مخصوصا در مواردی که از نظر ژنتیکی دانسته های کافی در اختیار نباشد و این در عمل بیشتر موارد را شامل می شود. گاهی میگویند در مدل ای اس اس های چندان فرض بر این است که تولید مثل غیر جنسی است. اما اگر این گفته به این معنی باشد که فرض غیر جنسی بودن در مقابل تولید مثل جنسی است گمراه کننده خواهد بود. حقیقت این است که مدل های اس اس چندان به جزیات نظام ژنی نمی پردازند. برعکس به طور ضمنی فرض را بر این میگذارند که تره به تخمش می دود. چنین فرضی در بسیاری از موارد کارایی دارد. حتی آن منهنی بودنش میتواند خالی از فایده نباشد. زیرا ذهن را به سمت چیزهای اساسی سوق میدهد و از هاشی ها و جزیات مثل حاکمیت جنی که در بسیاری از موارد ناشناخته است دور میکند. تفکر ای اس بیشتر نقش نهی کنندگی دارد. نمی گذارد به تصورات نادرستی دچار شویم که ممکن است نظر را جلب کند. توضیح عبارت تکامل تدریجی میتواند یک حرکت هموار رو به بالا و یک نواخت به صورت ای از مراحل پلمانند پرش از یک وضعیت پایدار به وضع باثبات دیگر نبوده باشد. این پاراگراف خلاصه قابل قبولی از شرح نظریه شناخته شده ای است که تعادل نقطه ای نام دارد. شرمندم از گفتن اینکه من وقتی حدسیاتم را می نوشتم مثل بسیاری از زیست انگلستان در آن زمان از این نظریه که سه سال پیش منتشر شده بود بیخبر بودم. بعد از آن تا حدی شاید تا حد زیادی، مثلا در ساعت ساز نابینا متوجه شدم که به نظریه تعادل نقطه اقراق شده حساسیت نشان دادم. اگر با این کار احساس کسی را جریهدار کردم عذر می خواهم. می تواند به این حساب بگذارم که لاقل در 1976 قلب من سر جای درستش بود